عزیز اشعار زیاد داری که من خیلی بیشتر اصول آها اینم خیلی قشنگه های روز دار. خوشحال من که هر دمم بهارینو و خزانی دیگر است فرارسیدن بهار طبیعت مبارک استاد من تصویر ذهنی شما رو روی کاغذ آوردم نمیدانم شاید چندی شدیه شما شده باشد درویشی از کوه دشت. خواهش میکنم به نشانی بنیاد بود بفرستیم تا من ببینیم چه تصوری از من داشتیم عزیزان زیادی تماس گرفتن و شما تلفن بنیاد رو خواستن فکس بنیاد رو خواستن دورواش دورنگار و دور باش یا همون تلفن بنیاد نشابور بود و هشت نوود و شش و هفت هشتاد و چهار هشتاد و هشت نود و شش بیست و هفت هشتاد و چهار دورواش یا تلفن بنیاد نیشاپور هست دور یا فکس هشتادو هشت نود و شش بیست و دو چهل و سه هشتادو و هشت نود و شش بیست و دو چهل و سه شما میتونید تماس بگیرید البته خونه. این چند روز نوروز این هم چنین بله این چند هم خدمت شما باید اومد در خانه مام باز به همه همیشگی می یعنی خانه ای مادر اونجایی که آشیانه دارم متعلق به همیانم هم. به خصوص فرزندان اونجاست که همون هم رو از خودشون میدونه میانم شو از فردا شما... بیاری از بیاری مام خدمت خواهیم رسید از صبح خب میفرمایید خب در این بیت یک در جریان دیگه هم اینه بفته که رامشگر من یورود و رامشگران خواستم وقتی که تاریخ معیین شد که دون روز ما سال است باید بدونیم که رامشگری و نوای خوش هم پیشینی هشتزار ساله داره دارد و این کسانی که سنگ تمدن مصر و انها رو به سینه می زدن یعنی اروفایی ها ولی که ایران رو پنهان کنن پشت پرده تمدن مصر بسیار خوشحال بودن که یک صحنه هماوایی یعنی ارکست پیدا کردن از مصر که چند نفر دارن سنگ به هم بخوب و یک کنگ هم هست متعلق به 3500 سال پیش تا اینکه پیرامون سی سال پیش پروفسور دلوگاز از شغا میشه در حیقت خودستان یک صحنهای پیدا کرد اتفاقا اون زمان استاد گرامی باستانشناس ما دکتر یوسف مجیزاده که اون کهنترین نوشته جهان رو شش هزار در جیر پیدا کرد او در اون زمان دانشجو بوده و اون صحنه رو او پشیده در این صحنه یک کسی است که پشت خان نشسته و از او دارم می کنه. یه مثل هست که داره زرد میزنه و این زرد دو, دو تکه داره هر دو تا رو زمین گذاشته شده مثل تقریبا یک زرد و اون اونتا که اون گلوشو نداره رو زمین دو گذاشته که با دو, دو دست داره میزنه پیداست که اینها آباشون با هم دیگه همسان نبوده یعنی طوری ترتیب دادن که یکی از اینا آبای بم داشته باشه یکی آوای زیر داشته و یکی از که دوتا بزرگ بزرگوید هستش یکی که یکی, یکی بزرگتر که که اینها رو داره نای میدمه اگر شما در نای بدمید آرام بدمید آوایی که امروز بهش میگن دو از اون بیرون میاد وقتی که اندکی نیرو بدید به دم و نفس خودتون آوایی سل ازش بیرون میاد اگر باز بیشتر بتونید و نیه هم اندکی کلوختر باشه دوباره آوای دوی قام پسیم ازش میاد بیرون حالا ما بگیریم که با اون دوتا شاخه بزرکوهی بتونن هر کدوم از اینا دوتا آوای دو و سل خودشون رو چون یکی کوچیکتره دو و سل با همدیگه دیگه فرق میکنن یعنی از هفت نوت چهار تا نوت اینجا نواخته میشه اما بالا یک چنگ نواز داریم که حضووع چنگ نازشونده که این هفت نوت پیدا شده و این کاری که نوی نواز میکنه در حقیقت نوی هم نواوی با چندنگ که رو آ آکورد چهار تا فاصله رو نمیدونم شما موسیقی وارد هستید یا این, این چهار تا فاصله رو آکورد میزنه براش. و از هم مهمتر اینکه اونضوع کسی نشسته که دست روی گوشش گذاشته نه از هر ایرانی بپرسید این چیکار میکنه میگن این داره آواز میکنه دکتر مهمی که هیچ کس به این توجه نکرده اونی که چگونه هست که کسی آواز می‌خونه با آهنگ زرب اگر شعر زربی و آهنگین در ایران نبوده اینطوری که امروز استادان دانشگاه ما میگن که ایران شعر آهنگین رو از عربه رازی فراموش کردن که این همین افائل و همین عروض و همون نهب و دستور و همه اینا رو ایرانیان برای عربا نوشتن هیچ کدوم از اینا رو نداشتن حالا امروز به وجود که ما شعر وزنین و آهنگین رو از عربا فرا گرفتیم این یه منظره 6000 ساله سال است که نشون میده که همراه با آوای زهر دارن شعر میخونن یعنی ما شعر آهنگینی 6000 ساله سال داشتیم این یه هیچ کارش کرد. یعنی مدرک خیلی خیلی روشنه. اما این صحنه متعلق به 6.000 سال پیشه در حالی که شعری که ما خوندیم از شانومه متعلق به 8.000 سال پیشتره یعنی آواهای متفرق و یگانه که از نای و اینها در میومد که ما تصویراشو داریم رو سنگاه و اون همون نایی که امروز بومیان استرالیایی دارن به نام دی آواهای متفرق و یگانهی که نوت به صورت امروزی نداشت یعنی کام شناخته نشده بود و پردهها شناخته نشده بود در 8000 زار سال پیش به همدیگه پیوست و نوای خوش رو در دوران جفشی به وجود دوباره ما امروز درسته که فکر میکنیم که نوای خوش که اروپاییو میگم موزیک و نام, نام بوداریشون هم نادرسته من خواهش کتاب زمین شناخته موسیقی ایرانی منو بخونید میبینید که نام بوداری اونها نادرسته خب به در این به تختیبی که هرده ها بتونن بیان بکنند و آهنگ خوش داشته باشن این سلیقه و تشخیص نیاکان ماست و جهانیان الان از اون چیز یعنی فواصلی که نیاکان ما گرفتن بعدان بهرورد میشن و از موسیقی لذت میبرن و ما درسته که موسیقی رو گمان میکنیم که برای لذت بردنه اما در اصل یک دانشی از است برای که فاصله این پرله ها رو اندازه گرفتن یک کار صد درصد ریاضی است که نتیجه آبای خوش میشه بنابرای این این کار صد درصد ریاضی هم به هنگام پیدایی نخستین ماری و به هنگام پیدایی نخستین ماری که ساعت شماری که فهمیدن که شب با روز برابر میشه در هشت هزار ساعت پیش پدیدار شده درود به این رمان این نیاکان خردمند ما که در تحنه روزگار چنین کارهای های انجام داده خب ما در این بخش درباره باید آین های نوروز صحبت کردن هرچقدر صحبت کنیم ل... به سالا زمان این اجازه به ما نمیده بیشتر دوست داریم صحبت کنیم هرچقدر صحبت کنیم کم صحبت کردیم و دوست داریم بیشتر صحبت بکنیم ما باید در این آخرین روز البته که صحبتی هم اشتاد من میخوام در مورد اون هم اگر بشه پیدا کردن نفت و صحبت از اون که امروز 29 اصفرد هست در سالروز میدی شدن سرعت نفت در کشور عیزیم من میخواستم خواهش کنم اگر میشه این رو بفرمایید و بعد ما به پردازیم به خواندن داستان های شاهنامه از در این, این در اندیشه من بود که به خاطر جنفشانه هایی که رو و نفت رو از آن ما بود دو مرد به ما برگردون در باید بر نفت در باید نفت منصوبت بکنم همونطور که در چند جرس پیش از کردن در دهیوران زورستان یک هستیری پیدا شده که آغشته به غیره متعلق به 8500 سال پیش یعنی پیرامون همون زمانهایی که نوروز پیدا شده ما غیر رو میشناختیم برای جهانی که یک سال نفت پیدا کرده یا شاد ست و سی سالی که پیدا کرده ببینید که چقدر باید شکفتنگیز باشه ما اون زمان یکی از در حقیقت موادی که از نفت پدیزار میشه میشنفتیم نفت در باژه در عوستا از نبتو یعنی در نوشته یه چندزار ساله داره تایید میکنه که معنی میشنفتیم از جیشه یعنی نم چطور از ریشه نم گرفته شده و اینکه من خودم در نزدیکی آقا جاری یه دیدم کسانی که اهل اونجا آشن یا رفت آمد کرداشن کنار جده یه است که همطور نفت،, نفت طبیعی از اونجا به صورت نم میزنه بیرون و هندک هندک توی روزخونه حتی حرکت هم میکنه نخستین بحثیابی نیاکانه به نفت از اینجا بوده و خوب این نو این مدرک 8500 سال هم که مد داریم. اما که دیگه هم هست از نفت که یکیشو ما هفته پیش کندیم که بکنده درون آتش و نفت و چوب زبر روزهای ایران بارکوب رکوب برای ویران کردن کاخ و شهر افسوسی و ایرانیان به کار بردن. اون اون چیزایی که صحبت کردیم ده. حالا اونا رو با نفت رو از ایران به اون اونجا برده باشه. من میخوندم که کسانی که نیرنگ و بند حسار رو دارن اونا رو جمع کرد یکی از اون کسان هم همین کسی بوده که مفت و خوب, خوب و خوبی می میشناخته و میدونسته که باید ازش بر چیست خب در هنگامی که اسکندر گوجستک گوجستک یعنی ملعون اومد همه که تا ما رو ویران کرد و همه دانشمندان ما رو به دار کشید همه رو کشت و رو کتاب ریختن همه رو با هم سزوندن اون فرهنگ و اون زندگی بسیار شگفتنگیز رو همه رو دن بود به ایران رو کردید و ایران سرا یکی از کاره که این بود که در فخ یعنی ما امروز میگیم فخ یعنی مردم دیدن که این کاخ بزرگیه و از طرف جمشید رو بزرگی پادشاه می دونستن فکر کردن که اینجا تخت شده این نام نیست که مردم گذاشتن اینجا واقعا تخت جمشید نیست اینجا باید داراب کرد باشه مم. یعنی پای تخت زمستانی حقامشیان در شوش بود و اینجا رو ساخته بودن برای جشن نوروز اولین کسی که توجه کرد که اینجا برای جشن نوروز ساخته شده استاد روما شد بود. که دونست که اینجا برای جشن رو بود و شما تمام کسانی که میبینید که دارن هدایه و پیش کشور میارن اینا همه کسانی هستن که از اون یک یا 527 بیست و کشور به طابع اخامانشیان دارن هدایه ویژه خودشون رو میارن برای پادشاه و هر صورت شب جشنی میگیرند در اون تالار و بعد یکی از برنامه های این بوده که یک نفر میاد به یه زرفی در دست داشته و کس دیگه بوده که یه چوبی داشته که سر اون چوب پنبوب و پارچب بسته بودن ها. اون این رو میزنه تو این زرف و نقطه به نقطه روی زمین تالار دایره دایره اون زمین رو خیست میکنه بعد یه شخص دیگه ای پیدا میشه با مشعل فروزان میاد و این دایره اولی رو آتش میزنه و به سرعت این ها آتش میگیرند به طرف آخرین دایره که نزدیک اسکندر و جسته بوده. به طوری که او فکر میکنه که الان آتیش خواهد گرفت از روی تخت پخت میشه رو زمین. بعد بلندش میکنن و میگن نه این نمایش بود. این شما رو نمیگیرفت. گفت این چیه گفتن نفت؟ خب حالا در نظر بگیرید که این نفت که اینطور خاصیت خواست اشتعال داشته یه چیزی باید نزدیک به بنزین هوافر باید نوز باشه چون که حتما شما بیاد دارید بخاری نفتی قدیمی رو که اگر شما کبریت بریس توش خموش می شو. نفت داری درجی از اشتعال بسید که روشن بشه یه فیتیلهی بود سر سی سیم می اینو روشن میکردن اینو نفت, نفت مدت باشه تا کم کم نفت, نفت به, در... به نقطه اشتعال می روشن بشه پس این نفت نبوده این چیزی قابلیت شالش خیلی بطور که از فاصله حتی می گرفت گرفته این دوواه با هم دیگه فاصله باشه اینطور گفته شده. این چیزی باید نزدیک بنزین هم ما باشه. ما در دستگاه پالایش آب چغازنبیل که در حقیقت یک دستگاه که 3400 و سال پیش درست شده و در اون دستگاه عظیم که برای آرستانبی شهر درست شده بود ما از قانون درخت خمسطی رویه های آب در ظروف مختلف یا مرتبط آگاهی داشتیم شما میدونید که پاسکال 400 پیش پیشتری آزمایشگاه توی قرارندی و, و چند تا لوله این قانون رو پیدا کرد و ما برای آبرسانی به یک شهر از این قانون استفاده کردیم که من امروز نمتونیم بالو فیرندر بار او صحبت بکنم وقتی که ما از این قانون برای آبرستانی یک شهر استفاده کردیم باید بدونیم الان هزار سال پیش از این قانون رو میتونستیم پس این قانون زروف مرتبط متعلق به پاسکال است متعلق به نیاکان ما و در ملادی که برای این در حبت دستگاه با کار رفته ممبینی غیر وجود داره قیر و نفت سیاه یعنی این است که از قیر و نفت سیاه هم برای ملاد و برای در حقیقت ضد آب کردن و ضد رتوبت استفاده می آب رو به بیرون نده آب در داخل نگه داره. در جغرافی های بعد از اسلام مرتبا از نفت چه های نفت باکور و دیگر نقاط عدد بیشتر از باکور سواست شده که اران بود و بعد اونجا که روزانه اینجا مرتبا می و با بار خرب می برن اینجا و ایرانیان از این برای روشنوی استفاده میکنند یعنی ما چراغ نفتی داشتیم سابقه یه هزار ساله در نویشتهای های از اسلامه اما خوب پیشتر بود حتما متاسفم که اونجا اسکندر میگه خب این چی بود میگن نفت و خاصیتش چیه گفت آتیش میزنید یا میزنید یه داشت که از بچگی با بزرگ شده بود گفت این رو بزن او و اون رو نفتی خون روش اون چیه کشید و به رو نجات دادم ولی تا آخر آن دیگه لال شده بود نمیتون سوال اون زن روزفی که امراه اسکندر رو برستد بر تخت شاهنشهان ایران نشسته بود به نام تاییس این گفت خب اگه اینجوریه خود, خود اسکندرم گفت اسکندر رو پس اگه اینجوری اینجور آتیش بزنی و تاییس مشعل رو گرفت از دست اون آتیش زد. درد بزرگ روزگار ما اینه که اروپایی که همواره نساط ما حسد دارند و چشم ما رو از تا مجسمه درست کردم از فرانسه فرستادن به به نام مجسمه آزادی اون که شما میبینید مشهل گرفته نماد اینه که تخت جمشید داره آتش میزنه وگرنه نه مجسمه آزادی به مشل چه ارده بود مجسمه آزادی آزادی. باید مثلا فرض کنی که زنجیری به پا باشه زنجیر بریده باشه پرندهی در دست داشته پرنده رو آزاد کنه این این در حقیقت رشورزی وردی نسبت مثلا به فرهنگ ما که نمیتونن ببینن ما در همه چیز چند سال پیشتر از آنها بودیم در باکو یک آتشکده الان هست که هنوز روشنه مت... مماری نشونه ده که از زمان عشقانیان ساخته شده که راه داره به مخازن گاز زیر زمین و حالا این اول این رو که کردن بعد این رو به مخازن زیر زمین پیوند دادن که کار خیلی مشکلیه یا اول رو لوله رو از گاز رو دادن بعدن به آتش در این کار مهندسی بسیار عظیمه دو. که دو هزار سال این آتش کدم روشنه اینی ما گاز رو هم میشناختیم در نمیشته های دقیقی در م... که همراه به شاهنامه هست در بازه آتشکده برزین مهر هم میگه که آن مهر برزین عبیدود بود منور در و بود بود یعنی در حقیقت راه داشته به مخازن گازی که زیر جیرمون کوهستان ریون بوده نه و گاز از آغاز متعلق به نیاکان ما متعلق به ایرانیان بوده و دروت بروان آن کسانی که با جانفشانی دوباره این نفت و گاز رو متعلق به ایرانیان کردم پنجره های رویمهداوب رو, رو میشنید در ویژه برنامی که به مناسبت آغاز سال ۱۲ ن هست استاد هم چون یک چند شب های گذشته در برنامه هستند و این ویژه برنامه یک برنامه خاص هست که استاد در این بخش از آینهای نوروزی از داشته های ما از دانشمندان بزرگ ما از ایرانیان بزرگی که همشون هم هستند. صحبت کردن و این فقط یک, خاص فقط یک حرف نیست بلکه یک واقعیته که از دل تاریخ برای ما استاد جنیدی فرمودند. تلفن‌های های برنامه 220-485 220-588 گوسف و شماره پیامک 3558 خدا به من کمک کنه که بتونم پیامک های شما رو بخونم و تنفون های شما رو پخش کنم منطقه ها در این آخرین روز سال باز هم میشنوییم داستان های شاهنامه رو از استاد از زبان استاد فریدون جدی استاد روی چند هستش و کدام داستان ۲۶ رویه یا همون صفحه 256 ر سرم دفتر سرم شاهنامه فردوسی بزرگ ویرایش استاد اه شما در شام مای خودین تو آنها ما رو بازگذاشتید در شاه خودتون میتونید پیدا کنید ادامه داستان که پاسایی که خسرو هستش دیگه دییم اگر به خاطرش رو که یعنی ایرانیان رفتن به شهرهایی که همه به شکل چینی ها بودن یعنی ضخ و و زبان ها به, به شی مخرى زمین بود این نشانه آگاهی است که ما از چین داریم و اون نشانه اینه که اون ایرانیانی که کشتیشونبلقیقت بیاه شد اوننا رفتن موندم و بر روی فرهنگ درستان به جنوب شرق آسیا تاثیر گذاشن که این دیگه ما بعدها در این باره صحبت بکنیم و من در داستان ایران دفتر دوم در این باره به گستر بیگی صحبت کردم خب اون داستانه که همه پهلوانان ایران سپاه برفتند یکسر به نزدیک شاه که گر شاه را دل نجنبت جای سوی شهر ایران نیایت شرای ما با یا تا افروسی و به مکران ز دریای آبینی بگذره پرکرد زواره گروز روی ایران شود فرزکین که باشد نگهبانه ایران زمین گروز باز با تخت افسر شود همه رنج ما پاک بیبر شود از آن پس به ایرانیان شاه گفت که این پند با سور مندیست جفت اینا افترد هست افترد هست شد شو... چهار روی شش به جیهون گذرک کرد بر سوی برخ، چشیده زگیتی، بسیش رو ترخ، همه بوم و کشور بیا راشتند، و رود و رامشگرم خواستند، درست همان چیزی که در نوروز پریزار شده؟ بله ببستند آزین به شهر و راه همه برزن و کوی و بازارگاه پذیره شدندش، همه مهتران، بزرگان هر شهر و گنداوران ببید الان اسطور جنیدی من اینجی که الان چون تصویر نداریم فقط در آواز برنامه تصویر بود و میدید الان من فروشمو تصویر میکنم که اسطور جنیدی آن شش رویه رو دارند در هر روی در هر صفحه فقط دو بیت خوندن در یک این روی آخرم یک بیشکون بعد یه بازگشت رویه بعد یعنی همه ی مقصوده همه ی مقصود است بعد میفهمی میشه استن ترکش نیز در با شهر یا تاسفم اینجا باز افرسی داره پس به ایت, ایت اتفاقی هم ننفید یعنی همینجور که تداغمی که من تداغم که به دنبال همین منطقه اینجا یه داستان بسیار درازیه که افراسی اومد نزدیک پایتخت خبکیخوس رو پیاده افراسی در, در دریای پوکیانوس کبیر بود پیاده چطور هم اومد؟, اومد؟ چرا اومد پیش دشمن خودش؟ چرا باید باید کسی که باید ببرزه چرا باید بیاد نزدیکی دشمن خودش دروی زره همونجا پیداش میشه خوشنده ایسیه بعد اینو میزنن توی دریای چیچست و دریای چیچستی که داره خوش میشه من پر روز بهت عکسی دیدم توی دریا ماشین ایز پارک پارکرده یعنی اون میه دریای دلش چی بعد اون بیاد اینجا برن اون زیر, زیر دریا و زنده بمان و بعد بکشن و بعد بکشن همه اینها ها افضل دست یعنی خرد که یک کسی هزاران فرسخ راه دور رو پیاده اومده باشه به نزد دشمن خودش که آز... چون که پای که خود و آزربای بود دیگه چند بار در این بار سوال کرد بیاد اونجا تا اونجا کش بشه اینا همه اصلاهای خیلی خیلی نادرسته که ما دیگ پسان گهنشست از برای تخت آج به سربر نهادان دل افروز. چون در گوشن زنگار و میرود در و درامشگاه خواستن دونبالشیه. نه. پسان که از برای تخت آج به سربر نهادان دل افروز. تاج سباه انجان شد به درگاه شاه روان و بزرگان زرین کراه به شاهی برو حافید بر بران تاج بر روحرف شاندند. دیکی سور بود در جمان سر به سر. خ بهشه به سوال نوبت پیدا شدن یک سرمای خیلی شیگفتی که به بیرون شدن بخشی زیران انجام میده اینجا ب. به سوالار نوبت به فرموجشااه که هر کس که آوید بدیم بارگاه و بازگردان بهنی خون، همه مردمی جویو تندی مکن بی آمد خرامان به جای نماز همین گفت با دابل پاک راز شب و روز یک هفته برپای بود تن بود جا و در جا جای بود چو بر تخت شد نام و شهر بی به درگاه سالار بار به فرمود تا پرده برداشتند سفر را درگاه بگذاشتند برختند با دست کرده به کش بزرگان پیلتکن شیر فش. جو دیدن بردن پیشش نماز از آن پس همه برگشادنند راست که شاخ ها دللی دوا داوراز جهان دا بر محتران محتر چون تو شاه نشست بر تخت آج فروغ از تو لی همین مهر و تاج فرازنده نزهب و تیغ و اسب فروزنده برخ ذرگ است این پیشتر گفت ههنگام خودش گفتیم که که خسرو وقتی که پیروز شد بر اون پریده طبیعی اون وقت در همونجا نزدیکی دریا چیچ است آتش کده رو در حق بنیان گذاشت پرازنده نزه و تیغ و اسب فروزندهٔ فرخ آزرگشست همه پهلوانان تو را این سراسر به دیدار تو زنده این همه دشمنان را سپردی به خاک نمونده بگی تیز کس بیم و باک هر کشوری لشکر و گنج توست به جایی که پیبر نهی رنج توست ندانیم کندیشه شهریار چرا تیره گشتن در این روزگار تراز این جهان روز برخوردن است نه همگام تیما رو پرموردن است در از ما به چیزی که چا او هست ما را گنا او به دشمنی داردن در نهان بگوید به ما شهر شهریار جهان چون این داد پاسخ ایران شاه که ای پهلوانان با دستگاه بگی دشمن ما نیست رنج نشود نیز جایی پروکنده گنج نه آزار دارم کار سپا نه اندر شما از کس رو گناه یکی آرزو دارم اندر نهان همی خواهم از کردگار جهان بگویم گشاده چو پاسخ دهد به پاسخ مرا روز فراخ نهد همه پهلوانان زنزدی که شاه برون آمدند از قمان جان به سالار زمان گفت شاه که بنشین پس پرده بارگاه کسی را مده بار در پیش من زبیگان و مردم خیش من چون یک هفته بگذشت, نن مود بگذشت و نن مود روی بر آمده که گلگل و گوی همه پهلوانان شدند انجامن بزرگان فرزانه و رای زن جهاندار پای بود هفت روز و هشتم که بفروخت فروز در در پرده برداشت سالار بار نشست از در, در تخت زر شهر یار همه پهلوانان و با موبدان دفتند نزدیک شاه جهان کشابند لب کیس که روان جهاندار با دادو روشن روان همه بودنی ها به روشن روان بدانی به دانش به گردان زبان همه بندگانیم در پیششا چه کردیم و برما چرا به از راه همه پاسبانان گنج توییم پر از درد و گریان زرنج توییم چون این داد پاسخ دور باز که از بحلوانان نیم بینیاز یکی نه از کشوری دشمن آمد پدید که تیم ها آن برد به باید کشید یکی آرزو خاص روشن دلم همی بر دل آن آرزو نکسلم. بدان آرزو دارم اکنون امید شب تیره تا گاه روز سپید. چویابم بگویم همه راز خیش برارم نهان کرده آواز خیش. شما بازگردید پیروز و شاد بدندیشه بر دل مدارید یاد. چویشان برفتم پیروز شاه به فرمود تا پرده بارگاه. فروهش تو بنشست گریان به درد همی بود پیچان و رخ راج ورد بخفت و روشن روانش نخوفت که اندر جهان با خرد بود جفت چنان دید در خواب کوراب و گوش نهفته بگفتی خوجست سروش که ای شاقه نیختر و نیخت وقت پسردی بسی یارو تاج و تخت اگر زین جهان تیز بشت کنون همچه جستی اگر در جهان تیز بشتافتی افتی کنان آنچه جستی همه یا ای این رمز این داشتان ها باشه که در آهنده میگم، ببینید که سه بار که خسرو در حقه پس پرده پینام بشه این بروز یه سرمایه سخته در ایشان. که در سه مرحله انجام بگیره تا بالاخره مرحله آخر دیگه به کشش دادن اینه از میان رفتنه که خسور رو اون چند پهلمانی که هفته آینده در این باره امید داشت بس بیاد داشته باشی در خفتم فربردین ما در خدمت استاد جنهیدی هستیم و ایشان ادامه داستان رو من خواهش میکنم از حضورتون که اینجا داشته باشیم با امید خدا شما خود تو فرمودی تلفن‌های های عزیزان آماده هستش که زمان زیادی هم نداریم تلفن‌ها. زیاد هست پخش کنیم شما جواب بدید تمام نکون زیادیم اومده اما سلام عیدتون مبارک استاد جمیدی نوروز باشید نوروز به چه معنی است ممنون عیدون بودن شهری بود عیدون بود یعنی این بود اگر شما ببینید که مثلا روز نوروز من پاسو بودم عیدون بود یعنی چنین بود برای شما خوجسته بود تلفن اوبر رو اگر صلاح هست پیشتون خوش بادر دممرر بسیار. به پیش به آسدادگی همی اصد جنینی می خواستم از استاد جنینی خواهش کنم که دو گشت سال رو به زبان پارسی اوستایی بخونن تا ما بتونیم ضبط کنیم پیش آبیس رو شاد باش میگم خمایین هستم هیچ دستاده از کودت درستم درست بر شما شاد باشید دعا نه آفرین من هفته پیش از که در ایران آفرینگان میخوندن این آفرینگان ها مثل این مقدمات میریسید اونجا که درود بفرستند و آفرین ستایش ویژه به تمام نیاکان و تمام بزرگان ایران و یکی یکی نام برده میشد و تا برسه به از کلومت سر سرشیانت پیروزگر این آفرین حالا من چون میخواد یک بخش از ار ها میخونم بر مزده اصنا احمی مزده اصنا فرورانم، آستو تست آستوی هومتن منو، آستوی هختن فچو، آستوی هورشتن شهوتنم، آستوی در اینو منگویم، موزرستیم، فرسپای و خدران، ند آستیدشیم، خدمتسام، عشبانیم، یا هایی، تنام چا، بیشنگ تنام چا، مزیشتا چا، فرخیشتا چا، یا آخو ایریش، زرتوشتش، در اینجا میگه که من میستایم اندیشه ای نیک و گفتار رو کردار نیک رو میستایم این اندیشه ای رو که مخالف جنگ و خون روزی در حقیقت کشتار در جهانه یعنی اندیشه ای رو نی دنبال سلحه یعنی این اندیشه سل رو جنگ افضار رو به طول و آشتی برای جهانیان میخواد و بداخل راه نجات جهان هم همی خواهد بود که این روزی این جنگ افضار رو از بیر قانون ظروف مرتبطه در کاخ آدی استفاده شده 430 سال پیش عقدادی رشت درود بر شما و درود به کیان بله خب ظاییده از این ظروف مرتبطه نه نه تنها در آدی استفاده شده بلکه در نزدیکی سوری هم یک کاخی بوده که متعلق به شاهبست بوده اونجا از این قانون استفاده شده تا وقتی که ما قانون یک ازفر 3400 داریم باید دادیم که خیلی خیلی پیشتر از این بوده درسته دانشمندان بزرگی داشتیم و دانشمندان بزرگی داریم در این سرزمین در این سرزمین که مردمش اهل صلح هست اهل دوست داشتن هست احل, داشتن هستن هستن، احل نوروز هست تشکر از, از یک سات تلاش برای معرفی شاهنامه استاد جنیدی. بابام با خرید ماهی قرمز با سه صفحه هفتین مخالفه میگه این رسم سال نوع چینی هاست نه ایرانی ها میگه ایرانی ها سیر و انار دوی آب میدازن میخواستم بپرسم اگه این رسم ایرانی نیست چرا همین ماهی قرمز میخرن؟ در تزویزیون هم همش نشون میده ده هستم هر ساله از بندرم متشکرم. فدای تو بزرگمه فرزند ایران فدای همه فرزندان ایران جان من و من فدا... فدا شما بود که با این گفتار بارد به برنامه ما البته چندی پیش این رو گفتن که ماهی قجمز از چین اومده زیاد روشن است که واقعا از چین اوواده باشه. ولی اگر هم از یه مدتی ینیمه دوصد سال پیش به اینترنت این رسم این شده باشه در حال یه رسمی که به شرط که ما ها نمیرم به شر این ها رو بذم بازار تا برگردانطوروری بل باشه که از داده های یه از دان در خانه نوروزی استفاده کنید نان بگذارید ماست بگذارید پنیر بگذارید، فرابال های روستایی و سبز بذارید گل بگذارید، بحل سیب و احمال بگذارید، اگر احمال باشه شاد باشید در نوروز نباید ما به جان کسی ستم کنیم هیچ گاه نباید به جان کسی ستم کنید بله اون چیزی که من میخواستم خواهش کنم همینجا انشارهی که که از بزرگی مهد ع بزرگ جان اگر ماهی قرمز خریدی حتما اون رو تو و همه عزیزان همه شما کوچیکای های بزرگ کچیک ها و کوچک زن بزرگ اون رو فردا بعد از ات طرفی ح... هفتیم وردار ببردار در آب روز آب یا آی حوز بزرگ این پارک ها که دارن بنداز اونجا که خوشحال خندون باشه اون هم نوروز داشته باشه درود بر شما درود بر استاد سیدون جلیدی و باش میگم نوروز رو به همه ایرانیان و فرصتش من از استاد جلیدی در تفاوت بین قوم و ملت هست و یکی دیگه هم اگر استاد فرصت داشته باشم بگن که تفاوت بین گویش و زبان چی هست سپاسگزارم خدای نجات شما شاد باشید واجه ملت از انجلاب مشروطه به این طرف به جای مردم بکار رفت من میسی یه هفته پیش در این مورد صحبت کردم که ما بودن که دولت این گفت ببینیم ملت چی میگه کم کم ملت پیروان یک پیخنبری یا پیروان یک دینی هستن برای این واجه ما در زبان داشتیم پاترم یعنی رمه یا مردمی که نگهبانی میشن به وسیل یک دولت و یک پادشاه. این پاتران به فارسی شد بادرم و بعد اونو در با خوندن دیگه هیچ به کار گرفته نشد رمی ای از مردم یعنی گروه از مردم که با یک قانون تحت یک قدرت مرکزی اداره میشن در باره یه گویش زبان اولین بار که کس گفت که بگیم نیم زبان این باجه نادرسته مگر کسانی که به رجعه مختلف صحبت میکنن با نیمی از زبانشون صحبت میکنن ما همه با زبان صحبت میکنن من این رو بارها گفتم و نوشتم ما باید به هر گویشی بگیم زبان مثلا دو تا روسا هستن که بیه پس و بیه پیش تا به فاصله خیلی کم زبان با هم دیگه فرق فربون اون زبان بیه پس اون زبان بیه میشه ببینیم سبزوار و نیشابور تو شهر خراسان خیلی با هم دیگه تفاوت در زبانشون هر کدوم از اینا رو باید بگیم زبان شخصیت بدیم به گویندگانشون و هر کدوم از روستاها بگیم این زبانشونه و گویش معنی نداره و نیم زبانی هم که پیش‌نویس شد معنی نداره شاب باشید و این نه یه بار دیگه میخوام در مورد واژه ایر ایران ایر. ایران ایرانیان شما صحبت خواهید درود این به این خاطر هستش که من می دانم شما دوباره برای ما بفهموید که چه هستیم باشه من این در درود بر استاد جنیدی ایران یار نوروز را شاد باش می ایران آنی ایران باشه آنی ایران باشه که خب که از سوی ملت ایران ما بگیریم. اگرچه ما چشم به پاداش نداریم ولی خوب ملت ایران بیدار و آشیار ایر یعنی فرو، فروتن با جم جم علفه میشه ایران یعنی فروتن صفت ایرانیان بوده یه صفت دیگر ایرانیان داشتن که آزاده یعنی در آزادیگی رو در فروتنی دونستن نه در زبردستی و بالادستی و با قول و در یک کتابی هست که نامی نام داره که پهلوی بوده نوشی شده در زمان ساسانیان بعد روزبه فارسی که عرب و ابن مقفر گفتن اون ترجمه کرد به عربی ما در همه جا می که مثلا دیگه کشور ایران رو میگه ملک خاز، خازه این یعنی پروتنان حتی پادشاه ایران رو میگه ملک خازه این یعنی پادشاه فروتنان. درودبون کسانی که میرسند به مقامات بالا ولی وقتی گرستن اونجا پادشاه فروتنان باشن یعنی در فروتنی از هنه بیشتر باشن و ایر و این معنی ایران در با الف نسبت شده کشور ایران سپاس گذارم از شما استاد جنیدی ساعت نگاه نکنید من بخواب یه چیز را عرض کنم بسیاری از تلفن‌ها، ها های شما و تلفن‌هایی که آماده هست من میمتونیم بعضی هاشو پخش کنیم چه سوال هست شرمندیم به خاطر اینکه زمان برنامه تمام شده گفتن که یک بار دیگه اون سخن آغازین رو برای ما بخانید و این شاد باش رو برای همه ایرانیان داشته باشید این پیام شما این صحبت شما و عرض میکنم من در همینجا میخوام خدافظی کنم از حضور شما استاد ندی و سپاسگزاری خودم رو و تشکر خودم رو همینطور همکاران خودم رو همینطور مدیر محترم شبکه فرهنگ آی کازم داده رو خدمت شما اعلام کنم که بسیار سلام رساندم بهتون و تشکر کردم به خاطر یک سال همکاری خاطره باشه. و روز روزی چند روز پیش که در خدمتون بودیم خواستم خدمت برسم همینجا اعلام میکنم من از همین میکروفون و شما رو خیلی دوست داریم استاد جان. و لطف کردید بر ما در برنامه پنجره‌های ملت تا یک سال در کنار شما در خدمت شما جوان من جانموفای ایران و ایرانیانه و این جوانی که بذاری به قوی محافظت بشید فرخنده تر اونه که برای خدمت فرهنگ ایران باشه. من این کارها همه رو با افتخار کردم و تا جایی که هستم و باشم اینها رو اعتماد میدم. خدای نگهدارتون باشه سپاسگزاریم از شما. خدافظ شما، فعلا. البته شما در پیام آخر بخواهید خوان. من میخوام یه خدا بکنم که در خدمت شما باشید با موسیقی زیبایی که تقی کننده برنامه محمد رضا عزیز برام میگذره. عیدت مبارک باشه آقای عزیز صلوات بر آقای علی طاهری که رفتن، آقای نورالله الهی‌دری که من نمی‌بینمشون، اومدن و با دوست عزیز دیگه اومده. همان یه بود. کی داشت پخ پخش آیان می‌گازمی و آیه پرایمی می‌بودن هماینگی پخش هماینگی ورد من با آیه صورت است وش می‌نشود. از تبادلات آیان نظاره‌ری از این آیه باوری گیومی که هردو زحمت کشیدند نه هم همین تبادل اتیار است. یا آخرین لحظات سال 1389 و شما ایرانیان می‌گویم که در نور روز چات باشید چات باشید چات باشید،, باشید و شادی را برای همه ایرانیان این مردمان فروتن و سلشور بخواهید. تبادل استاد خدا رفز.